کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام حاملان سر حسین در اول منزلی که فرود آمدند به شرب و نشات نشسته بودند که دستی از دیوار پدیدار شد و قلمی آهنین داشت و چند خط به خون نوشت امتی که حسین را کشتند قیامت شفاعت جدش را امید دارند بیمه آنها را بگرفت از آن منزل کوچ کردند در راه به دیری رسیدند فرود آمدند تا بخوابند همان نوشته را بر دیوار دیر دیدند راهب را از آن خط و نویسنده آن پرسیدند گفت این خط 500 سال پیش از آنکه پیغمبر شما مبعوث شود اینجا نوشته بود در راه سنگی یافتند بر آن نوشته بود چون در سور بدمند فاطمه بیاید خون حسین به پیروهنش وای کسی که خسمش باشد او که باید شفاعتش کند <تصفيق> چون آن مردم در منزلی فرود می آمدند، سر را از صندوقی که برای آن ساخته بودند بیرون می آوردند و برنیزه می کردند و همه پاس او می داشتند تا وقت رهیل باز آن را در صندوق می نهادند پس در منزلی فرود آمدند. دیر راهبی بود سر را به عادت بیرون آوردند و بر نیزه کردند و پاسبانان پاس می و نیزه را به دیر تکیه دادند. نیمه شب راهب نوری دید از آنجا که سر بود تا به آسمان کشیده آن قوم در آمد و گفت شما کیستید؟ گفتند اصحاب ابن زیاد پرسید این سر کیست؟ گفتند سر حسین پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر رسول پرسید پیغمبر خودتان؟ گفتند آری گفت چه بد مردمی هستید؟ اگر مسیح را فرزندی بود ما او را در چشم خیش جای میدادیم. آنگاه گفت می توانید کاری کنید؟ گفتند چه کار؟ گفت من ده هزار دینار دارم آن را بستانید و سر را به من دهید امشب نزد من باشد و چون خواستید روان شوید آن را بگیرید بپذیرفتند سر را به او دادند و پولها بگرفتند راهب سر را برداشت و بشست و خشبوی کرد و روی زانو گذاشت و همه شب بگریست تا سپیده صبح بدمید گفت ای سر من غیر خیشتن چیزی ندارم و شهادت میدهم به یگانگی خدا و اینکه جد تو پیغمبر او بود و شهادت میدهم که من خود غلام و بنده تو هم آنگاه از دیر بیرون آمد و اهل بیت را خدمت میکرد سر را برداشتند و روانه شدند چون نزدیک دمشق رسیدند با یکدیگر گفتند آن مال را زود میان خیش قسمت کنیم مبادا یزید بر آن واقف شود و از ما بستاند پس کیسه ها را آوردند و گشودند آن زرها سفال شده بود و بر یک سوی آن نگاشته ولا تحسبن الله غافلا اما یعملو الظالمون و مپندار که خدا از کردار ستمکاران غافل است و به روی دیگر و سیعلم اللزین از علم ایمون غلبین و زودا که ستمکاران بدانند به چه بازگشت گاهی باز خواهند گشت آنها را در بردا نهری در دمشق ریختند. راهب، چون سر را به آنها بازگردانید، از دیر فرود آمد و در کوهی تنها به عبادت پروردگار پرداخت. ابن لحیه گفت، تواف کعبه می کردم، ناگهان مردی دیدم می خدایا مرا بیامرز و نپندارم بیامرزی، گفتم، ای بنده خدا از خدای بترس و چنین سخن مگوی که اگر گناهان تو به اندازه دانه های باران و برگ درختان باشد و توبه کنی خدا تو را بیامرزد که آمرزنده و مهربان است گفت نزدیک من آی تا داستان خیش با تو بگویم نزدیک او رفتم گفت ما پنجاه مرد بودیم و سر حسین را به شام می بردیم. چون شام می سر را در صندوق می و گرد آن به شراب می نشستیم شبی یاران من نوشیدن تا مست شدند و من ننوشیدم وقتی تاریکی شب ما را گرفت رعد و برقی دیدم درهای آسمان را نگریستم گشوده آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و پیغمبر ما محمد فرود آمدند با جبرئیل و بسیار فرشتگان و جبرئیل نزدیک صندوق آمد سر را بیرون آورد و بخیش چسبانید و بوسید و همچنین پیغمبران یکایک و پیغمبر ما بگریست و پیغمبران او را تعذیت و سرسلامتی دادند. جبرئیل به او گفت ای محمد خداوند تبارک و تعالی مرا فرمود مطیع تو باشم هرچه به فرمایی در امت خیش اگر خواهی زمین را بلرزانم که زیر و رو شود چنان که با قوم لود کردم پیغمبر گفت نمیخواهم. چون که روز قیامت شود، با آنها در حضور خداوند به هم خواهم رسید. آنگاه فرشتگان سوی ما آمدند. من گفتم الامان الامان یا رسول الله. فرمود برو لا غفر الله و لک خدات نیامرزد. آن مردم چون به موسل رسیدند خواستند به شهر اندر آیند. سوی اهل آن شهر فرستادند و زاد و علوفه خواستند. و اینکه شهر را آرایش کنند و آین بندند مردم موسل متفق گشتند که هوایج آنها فراهم کنند و بیرون فرستند و آنها به شهر نیایند و در بیرون شهر منزل کنند و از همانجا به شام روانه شوند آنها نیز چنین کردند در یک فرسنگی موسل فرود آمدند و سر را سنگی نهادند از آن قطره خونی بر سنگ بچکید پس از آن در هر سال روز آشورا از آن خون می جوشید و مردم از اطراف نزدیک آن سنگ می آمدند و از حسین برپا می کردند. و همچنین بود تا به عهد عبدالملک مروان بفرمود که آن سنگ را به جای دیگر بردند و دیگر اثری از آن معلوم نگشت لیکن در آن مقام گنبدی ساختند و مشهد نقطه نام نهادند چون به نصیبه این رسیدند منصور بن الیاس به آراستن شهر بفرمود بیش از هزار آینه به کار آرایش رفت آنکه سر حسین با او بود خواست به شهر درآید اسب فرمان او نبرد اسب دیگر خواست آن نیز فرمان نبرد تا چند اسب عوض کرد ناگاه سر را دیدند بر زمین افتاده مردی نامش ابراهیم آن را برداشت و نیک در آن نگریست و بشناخت آنها را ملامت کرد اهل شام چون این بدیدند از وی او را بکشتند و سر را بیرون شهر گذاشتند و به شهر نبردند. حاملان سر می ترسیدند عرب ناگاه بر سر آنان ریزند و سر را بستانند. راه معروف را رها کردند و بیراه می رفتند و هرگاه به قبیله می رسیدند می گفتند این سر خارجی است و علوفه از آنها می خواستند. خاندان حسین ابن علی را از کوه جوشن بگذراندند و همسر حسین حامله بود و در آنجا جنین بیافکند و جوشن کوهی بود در مغرب حلب و مثل سرخ از آنجا بیرون میآوردند و به بلاد می‌بردند و همسر حسین از آن صنعتگران معدن که آنجا بودند آب خواست اجابت نکردند و دشنام دادند بر آنها نفرین کرد از آن هنگام هر کس در معدن کار کند سود نبرد و در جنوب آن کوه است که مشهد و سخت گویند و مسجد و دکه هم و آن سخت را محسن ابن حسین نامیدند و در جانب غربی شهر در دامنه کوه جوشن قبر اوست. از علی ابن حسین پرسیدند شما را بر چه چنو ستورانی نشانیدند؟ گفت مرا بر شتری لنگ و بیروپوش نشانیده بودند و سر حسین را بر علمی بر بودند و زنان پشت سر من بر استرانی همه ناهموار و معیوب و گروهی از ماموران رز در دنبال و برگرد بودند نیزه در دست اگر میدیدند اشک از چشمی روان است با نیزه بر سر او میزدند تا به دمشق در آمدیم مردی فریاد زد اینان اسیران آن خاندان ملعونه. روز اول سفر سر حسین را به دمشق درآوردند و بنی امیه آن روز را عید گرفتند چون سرها را آوردند یزید در بالاخانه مشرف بر جیرون نشسته بود و سرود تا محمل شطران رسید و آن خورشیدها بر تبه های جیرون درخشید کلاق بانگ زد گفتم خواه بانگ زنی خواه نه من از بدهکار وام خود ستاندم ورود اسیران عوایل زمستان بود و در چنان ایام ایاشان مجلس لحو را در باغ و صحرا نتوانند برد ناچار یزید منظری بلند و مصفا که مشرف بر صحرا بود ساخته داشت و آنجا نشسته بود که اسرا را آوردند و او تماشا کرد <تصفيق> عبدالله ابن ربیعه همیری گفت من در دمش نزد یزید بن معاویه بودم که زهر بن قیس بیامد یزید گفت چه خبر؟ گفت مجده می دهم به فتح و فیروزی که خداوند روزی کرد حسین ابن علی با 18 تن از خاندان و 60 از شیعیان خیش به کشور ما آمد ما سوی آنها شتافتیم از آنها خواستیم تسلیم شوند و فرمان امیر عبیدالله را گردن نهند یا جنگ را آماده باشند جنگ را بر تسلیم برگزیدند پس ما از اول آفتاب بتاختیم و از همه جانب آنان را فرو گرفتیم تیغها ها افتاد و سرها را شکافتن و انداختن گرفت آن دست مردم بگریختند اما سنگری نبود به فراز و نشیب پناه می بردند و پشت تپه و ماهور پنهان می شدند به خدا قسم ای امیر المؤمنین نگذشت مگر به قدر کشتن زبیهه یا خواب قیلوله یا دوختن چند درز مشک که خاندان عبی تراب را به تمامی کشتیم و برانداختیم و برکندیم. اینک پیکر آنها برهنه است و جامعهاشان در خون آغشته و چهره خاکالود در بیابان خشک افتادند. آفتاب بر آنها میتابد و بادها گرد بر ایشان میپراکنند و عقاب و کرکس بر سرشان آیند. یزید سر به زیر انداخت، سر برداشت و گفت من از شما خوشنود می شدم اگر او را نمی و اگر آنجا بودم او را عف می کردم او را بیرون کرد و هیچ سلت نداد و خود حسین خبر داده بود به زهیر گفته بود زهیر بدان که اینجا زیارتگاه من است و سر مرا از پیکر جدا می کنند و زهر بن قیس آن را برای یزید می برد به امید سلت اما او را چیزی نمیبخشد یزید خانه تعام نهاده بود و با یاران خیش به نان خوردن نشسته و شراب نوشیدند. چون فارغ شدند سر را گفت در تشت زیر تخت نهادند و بسات شطرنج بر تخت گسترد و حسین و پدرش و جدش را به ذستی می برد و سخریه و افسوس می کرد و هرگاه بر حریف غالب گشت شراب برمی‌داشت و سه می نوشید. و تای جرعه را نزدیک آن تشت روی زمین میریفت میآشامید و بیاران میداد و میگفت بنوشید که این شرابی خجسته و میمون است و از مبارکیش همین که اول باری که آن را می نوشیم سر دشمن ما نزد ماست و با جان آرام تعام میخوریم ام کلسوم نزد شمر آمد چون نزدیک دمش رسیدند گفت ای شمر به تو حاجتی دارم پرسید چیست؟ گفت چون ما را به شهر درآوری از دری برک نظارگران اندک باشند و با آن مردم که همراه تو اند بگوی سرها را از میان کجاوه ها بیرون برند و ما را از آنها دورتر دارند که از بسیاری نگاه کردن رسوا شدیم اما شمر امر کرد سرها را برنیزه کنند و میان کجاوه ها آرند از لجاجت و دشمنی و آنها را از وسط نزارگان بگذرانی تا به دروازه دمشق رسیدند. اهل بیت را سه روز بر دروازه شام بداشتند تا شهر را آیین بستند هرچه تمامتر و به هر زیور و آرایه و آینه که بود چنان که هیچ چشم مانند آن ندیده بود و سرها را که پیشتر به شهر برده بودند بیرون فرستادند تا با اهل بیت وارد کنند آنگاه از مردم شام پانصد هزار مرد و زن دفزنان بیرون آمدند و امیران با دف و سنج و شیپور و جوانان میرخسیدند و دف و سنج میزدند و تنبور مینواختند. و مردم شام به گونه گنجمه ها و سرمه و خذاب خیش را آراسته بودند و بیرون شهر از بسیاری مردم مانند عرصه محشر شده بود در یک دیگر موج میزدند و چون روز بلند شد سرها و اسیرها را به شهر درآوردند. در بان اوید زیاد گفت جماعتی از آنها که اسرا و سر حسین را به شام بردند برایم گفتند که، نوهی جن را تا صبح میشنیدند و گفتند چون زنان و اسیران را به دمشق داخل کردیم روز بود سنگدلان و درشتخویان اهل شام میگفتند ما اسیرانی زیباتر از اینها ندیدیم شما کیستید؟ سکینه دختر حسین گفت ما اسیران آل محمدی سهل بن سعد گفت به بیت المقدس میرفتم گذارم بر دمش افتاد شهری دیدم جویهای آب روان و درختان بسیار و پرده ها و هجاب های دیبا آویخته مردم را دیدم شادمانی میکنند و زنان دف و تبل میزنند به خود گفتم شامیان را ایدی باشد که ما ندانی چند تن دیدم با یکدیگر سخن میگفتند پرسیدم شما شامیان را ایدی است که ما نمیدانی گفتند پیر مرد گویا تو بیابانی چادر نشین گفتم من سهل بن سعدم محمد را دیدم گفتن سح عجب نداری که آسمان خون نمیبارد و زمین اهل خود را فرو نمیبرد گفتم چه شده گفتن این سر حسین اطرت محمد است از عراق ارمغان آوردن گفتم وا عجبا سر حسین را آورده اند و مردم شادی می باز پرسیدم، از کدام دروازه می آورم؟ اشارت به دروازهایی کردند که آن را باب ساعت می گفتند. در میان گفتگوی ما ناگهان دیدم بیرقهای پی در پیدرپی پیدا شد و سرهایی بر نیزه. سر عباس بن علی در پیش آنها بود. نیک در آن نگریستم. گویی میخندی. سواری دیدم بیرقی در دست داشت. پیکان از بالای آن بیرون زده و سری بران بود. شبیه ترین مردم به رسول خدا پشت همه سرها و جلو زنان بود آن راهیبتی عظیم بود و روشنی تابان و محاسنش مدور با اندکی سفیدی و به رنگ خذاب شده گشاد چشم ابروها باریک و کشیده پیشانی باز میان بینی اندکی برآمده لبخند زنان دیدگانش گویی سمت افق می سوی آسمان و بعد در محاسن او افتاده به راست و چپ میگورد گویی امیرالمؤمنین است و دیدم از پشت سروی وی زنانی بر شتران بیروپوش سوارند نزدیک شدم و از زن نخستین پرسیدم کیستی گفت سکینه دختر حسین گفتم حاجتی داری تا برآورم که من سهل سعد ساعدی جد تو را و حدیث او را شنیده گفت ای سهر به حامل این سر بگو که آن را پیش در برد تا مردم به نگریستن آن مشغول شوند و به حرم پیغمبر نگاه نکنند نزدیک آن نیزدار شدم گفتم توانی حاجت مرا برآوری و 400 دینار بستانی؟ گفت حاجت تو چیست؟ گفتم این سر را از حرم جلوتر بری پذیرفت و آن زر به دو دادم منحال ابن امر گفت مردی پیشا پیش سر حسین سوره کهف می‌خواند تا به این آیت رسید ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم من آیاتنا اجبا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودند سر به زبان فسیح گفت شگفتتر از قصه اصحاب کهف کشتن و به توفه فرستادن من است ابراهیم ابن محمد ابن طلحه به علی ابن حسین گفت یا علی که غالب شد و او سرش را پوشیده بود و در محمل نشسته گفت هرگاه خواستی بدانی که غالب شد و وقت نماز آمد از آن و اقامه بگوی و طلحه جد ابراهیم همان است که با امیر المؤمنین به مخاسمت برخواست و جنگ جمل برپای کرد و کشته شد و کینه او هنوز در دل فرزندانش بود از این جهت چون حسین کشته شد شادمانی نمود و علی ابن حسین را زخم زبان زد خاندان حسین را بر پله های در مسجد جامع به ایستانیدند جایی که اسیران را نگاه می داشتند و در این مدت هیچ کس نتوانست بر آنها سلام کند ناگهان پیرمردی از مردم شام نزدیک علی ابن حسین آمد و گفت الحمد لله الذي قتلكم سپاس خدای را که شما را کشت و هلاک ساخت و شاخ فتنه را ببرید و از ناسزا گفتن چیزی فرو نگذاشت چون سخن او به آخر رسید علی ابن حسین به او گفت آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای گفت خوانده‌ام گفت این آیت را نخوانده ای که من از شما مزد رسالت نخواهم مگر خیشان و نزدیکان مرا دوست بدارید؟ پیرمرد گفت، خانده گفت، ما همونهاییم، باز گفت، این آیت نخوانده ای که خدا میخواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک دارد، گفت، چرا، گفت، ما همونهاییم پس آن شامی دست به آسمان برداشت و گفت خدایا سوی تو بازگشتم و از دشمن آل محمد و کشندگان آنها سوی تو بیزاری میجویم قرآن را خواندم و تا به امروز متوجه این آیتها نشدم چون وقت زوال شد به در خانه یزید بن معاویه رسیدند از بسیاری ازدهام کوفته و مانده سهل بن سعد گفت دربانان یزید بیرون آمدند و سر را در حقه گذاشتند و آنها را که حامل سر بودند به سرای درآوردند. من هم با آنها رفتم. یزید را دیدم بر تخت نشسته و تاجی بر سر دارد. در رو در آن نشانیده و به گرد او پیرمردان مردان قرش بودند و سرای او را به هر گونه زیور آراسته بودند و بر گرد تخت او کرسیهای زرین و سیمین نهاده. چون حامل سر برو داخل شد گفت شطور مرا از سیم و زر سنگین بار کن که من پادشاه با فر و شکوه را کشتم آنکه در بند و دربان بسیار دارد و شکوه وی مانع دیدار اوست کشتم کسی را که بهتر مردم است از پدر و مادر و گوهر و نژاد و والاتر از همه است یزید گفت اگر میدانستی بهترین مردم است چرا او را کشتی گفت به تمع جایزه تو یزید گفت به خدا که چیزی به تو ندهم و تو را هم به دو ملحق کنم و سرش بریدن آنگاه سر حسین را در طبقی زرین نهاد و میگفت کیفر عیت یا حسین حسین قدرت مرا چگونه دیدی بوی خوش از آن سر می دمید بهتر از هر اتری خاندان حسین را بر یزید ابن معاویه درآوردند، چون به در سرای یزید رسیدند مخفر ابن سعلبه آواز برآورد آورد که اینک مخفر ابن سعلبه به درگاه امیر المؤمنین آمد با ایمان بدکار علی ابن حسین گفت آن بچه که مادر مخفر زایید بدتر و لعیم تر است زنان و کودکان حسین را پیش روی یزید بنشاندند و یزید سر حسین را پیش روی خود نهاده بود و زنان حرم خیش و دختران معاویه و کسان وی را پشت سر خود بنشانید تا سر را نبینند علی ابن حسین آن را بدید دیگر سر گوسوند و غیر آن را نخورد علی ابن حسین گفت ما دوازده پسر بودیم در قلبسته. بسته هر یک دست به گردن بسته ما را بر یزید ابن معاویه در آوردند. چون نزدیک او ایستادین گفتم تو را به خدا سوگند چه پنداری اگر رسول خدا ما را بر این حال نگرد یزید به اطرافیان خود گفت اینها را بگو شاید. و سوهان خواست و به دست خود جامعه را که بر گردن علی ابن حسین بود بریدن گرفت و با او گفت یا علی میدانی از این چه کار خواهم؟ گفت آری میخواهی کسی را بر من مننت نباشد غیر تو؟ یزید گفت به خدا سوگند غیر این نخواستم و گفت علی ابن حسین چه دیدی؟ گفت آنچه خداوند مقدر فرموده بود پیش از آنکه آسمانها آسمان ها و زمین را بیا یزید گفت پدرت پیوند خیشی ببرید و حق مرا نشناخت و در ملک با من به نزاع برخواست و خدای تعالی با او آن کرد که دیدی. علی ابن حسین گفت هیچ مصیبتی نرسد در زمین یا در جان شما مگر آن که در کتابی نوشته است پیش از آفرینش و این بر خدا آسان است. یزید براشفت و تیز شد و دست بر ریش خود کشید و گفت آیت دیگر از کتاب خدا مناسبتر است تو را و پدرت را و به پسرش خالد گفت جواب بازگوی خالد ندانست چه بگوید یزید گفت بگو هر مصیبتی که شما را رسد سزای کاری است که از دست شما شد و خداوند بسیاری از گناهان را عف می کند علی ابن حسین گفت نبوت و امارت پدران و نیاکان مرا بود پیش از آنکه تو متولد شوی یزید گفت الحمد لله اللذی قتل عباک حمد خدای را که پدرت را کشت علی ابن الحسین گفت خدا لعنت کند کشنده پدرم را یزید برا شفت و به مردم شام گفت در باره اینان چه بینید؟ کسی سخنی زشت گفت و رعی به کشتنشان داد یزید با همگنان مشورت کرد رأی به قتل علی ابن الحسین دادند محمد پسر علی ابن الحسین لب به سخن گشود و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد به یزید گفت مردم تو به خلاف مشاورین فرعون رأی دادند که او وقتی از جلسای مجلس خیش درباره موسی و هارون رأی خواست گفتند او را با برادرش محلد ده و اینها به قتل ما اشارت کردند بی علت نیست یزید پرسید علت چیست؟ گفت آنها زیرک و عاقل بودند و اینها گول و احمق که پیغمبران و اولاد آنها را مگر بی پدران و حرام زادگان نمی کشند. یزید سر به زیر انداخت نعمان بشیر گفت یزید با اهل بیت حسین آن کن که اگر پیغمبر آنها را بر این حال میدید میکرد. فاطمه دختر حسین گفت ای یزی اینان دختران پیغمبرند که اسیر تو شده اند از سخن او مردم را دل بشکست و هر کس آن سرای بود بگریست چنان که فریادها بلند شد و زینب سر حسین را بدید دست به گریبان فرو برد و آن را چاک زد به آوازی سوزناک که دلها را پاره می کرد فریاد زد. دریق حسین، دریق تو ای حبیب خدا، دریق تو فرزند مکه و منا، دریق تو فرزند فاطمه زهرا برگزیده زنان، دریق تو فرزند دختر رسول خدا. و هر کس را در مجلس بود به و یزید خاموش نشسته بود. زنی هاشمیه در سرای یزید بود. شیون کنان بر حسین فریاد زد که حیف حسین حیف تو ای بزرگ خاندان حیف تو ای پسر پیامبر حیف تو ای شادی دل بیوه زنان و یتیمان حیف تو ای به دست ناپاک زادگان هر کس بشنید بگریست یزید بر دندان پیشین حسین چوب دست خیزران زدن گرفت و گفت این روز به جای روز بتر. و شعر خواندن گرفت که صبر کردیم و صبر کردن خوی ماست و شمشیرهای ما می برد و می شکافد سر و دست را می شکافیم سرهای دوستان خود را و آنها آزارندتر و ستمكارتر بودند ابو برزه اسلمی روی به یزید کرد و گفت چوب خود را بردار یزید که بسیار دیدم رسول خدا لب و دندان او و برادرش حسن را میبوسید و می میگفت شما سید جوانان اهل بهشتید خدای بکشد و لعن کند قاتل شما را و جهنم را که بد جایگاهی است برایش آماده کند یزید خشمگین شد و به بیرون کردن او فرمود کشان کشان بیرونش بردند و یحیی پسر حکم برادر مروان ابن حکم با یزید نشسته بود این شعر خاند آن لشگر که در زمین کربلا بودند در خیشی به ما نزدیک ترند. از پسر زیاد بنده بدگوهر سمعی نسل و تبارش به شماره ریک هاست و دختر پیغمبر خدا بی نسل و فرزند ماند یزید چون این بشنید دست بر سینه یحیی زد که در مرده خاموش باش و یحیی از الحاق معاویه زیاد را به خیش راضی نبود و زیاد فرزند ثمیه بود و شوهر سمیه بنده بنی سگیف بود. یهیامی گفت بنی امیه از شرفای قریشند و زیاد بند زاده است نباید داخل قبیله ما شود. سکینه گفت وله سنگین دلتر از یزید ندیدم و نه نکافر و مشرکی را بدتر و درشت خویتر از او. سوی سر حسین می نگریست و می کاش پیران قبیله من که در جنگ بعد کشته شدند میدیدند چگونه قبیله خزرج برابر نیزه ها به زاری افتاده است آن وقت از شادی هل می کردند و می گفتند یزید شلمباد دستت. نحتران و بزرگانشان را کشتیم عوض بعد و سر به سر شد قبیله هاشم با سلطنت بازی کرد ورنه نه از آسمان خبری آمد نه وحی نازل شد از دودمان خندف نیستم من اگر کین احمد را از فرزندانش نجویم